رو رونق عهد شباب است گرب و را میرسد مجده گل بلبل بل خوش الهان را ای سبا گرب جوانان چمن باز رسی خدمت ما برسان سر و گل و ریحان را گر چونین جلوه کند مغبچه باد فروش خاک رو به در میخانه کنم را ای که بر مه کشی از انبر سارا چوگان مزترب حال مگردان من سرگردان را ترسم این قوم که بر دورت کشان میخندند در سر کار خرابات کنند ایمان را یار مردان خدا باش که در کشتی نوح خاست خاکی که به آبی نخرد طوفان را برو از خانه گردون به در و نان مطلب کان ساحت کاسه در آخر بکشد مهمان را هر که را خوابگه آخر مشتی خاک است گو چه حاجت که به افلاک کشی ایوان را هر کرا را خوابگه آخر مشتی خاک است گوچه حاجت که به افلا کشی ایوان را ماه کنانی من مسند مصران تو شد وقت آن است که بدرود کنی زندان را حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی دام تزویر مکن چون دگران قرآن را